حکایت، یکی پرسید از آن گم کرده فرزند، که ای روشن پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنانش ندیدی، به گفت احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر تارم اعلا نشیندم، گهی بر پشت پای خود نبینم، اگر در ویش در حالی بماندی سر دست از دو آلم برفشاندی.